صلی الله و رحمه و بر برای خود جیگرد سبرگاهه یک اشکال راجع به خود مفهوم و کیفیت استدلال مفهوم یک اشکال هم راجع به این که حالا تقدیر این که داشته باشه چون زید آیه هست انتوسی بود او من به جهالت فتس بگو علاما فعلتون نادمین از این به اصطلاح زیده آیه مبارکه اینطور در میاد که عمل به غیر علم درست نیست به خبر عدل هم عمل به غیر علم از تر این اشکال قدیمیست در کلمات محوم سید و در کتاب از دریعه آمده اشکال تازه نیست اشکال قدیمیست و جوابی که الان که میکن در نکمون فکر میکنم در خوشبه بعد از کتاب قدیم آمده جوابش هم بیشتر اینه به اینه که این همتوسی و من به جهالت تخصیص خورده به مفهوم آیه یعنی مفهوم آیه اینه که خبر عادر حدگیسته و این همتوسی و به جهالت این جهت خارجه منطوق آیه مبارکه راجع به خبر فاصله منطوقش هم مفهومش هم نازر به خبر عقی وکه این زیل آیه انتوسی و قومن به جهالت این جهر به معنی عدم العه ولو شامل خبر عدل هم میشه بزاکه خبر عدل به خاطر محوم خارجی پس بنابراین اصابه قوم به جهالت در خبر عدل اشکال درد این راجع به یک جواب متعارف این جواب اشکالی داره بلابد عرض میکنم لذا اصولین متاخر شیعه بیشتر جوابشون مفهوم حکومت نه تخصیص. یعنی مفهوم حاکمه بر عموم، بر تعلیب است، بر عموم نه اینکه به نوبه تخصیص خارج شده باشه. پس در همین اون چیزی که در کلمات متأخر علمای شیعه آمذه بیشتر جنبه حکومت اصلا تعبیر به حکومت در عبارات اهل سنت نیست گاهی آمده به حاکم و که مرادشون حاکم یعنی شاره یعنی مبیه نه این حکومت اصطلاحی ما در عبارات قبل شیخ هم حاکم آمده که مخصص حاکمه به مخصص لفت بعد از شیخ مخصوصا و قدری جمعلای عبارات خود شیخ هم خیلی واضحه واضح, واضح نیست اجماعا دلالت میکنه لیکن بعد شیخ رو این مخموم خیلی کار کردن آنوان حکومت کارهای زیادی شده که این اندازه در کلمات خود شیخ هم نیست و حکومت رو اخسام گرفتند یا به نحو حکومت ظاهری یا بابعیست یا به نحو یا به نحو تزید اله آقلی اخسام و حکومت رو بیان کردن و یکی از حوائد همین حکومت در ما نحنفی گفتن معکوم آین مبارکه حاکم است بر تعریق بر عموم عموم این است که اصابه قوم به جهالت به جهر درست نیست محکوم این میشه الا این که خبر عرض این تقليل اما حکومت معناش این است که خبر عرض عمل به جهالت نیست اصلا نیست. اینکه عمل به جهالت ممنوع است الا در خبر عرض نه عمل به خبر عرض به جهالت نیست اون وقتی رو به صورت حکومت گرفتن حکومت به مهد تصرف در موضوع نه تصرف در خوک اگه تصرف در خوکم باشه تخصیص گرفتن تصرف در موضوع باشه حکومت به خود حکومت و انماحای حکومت تو بحث اینجا تو بخص تاروز بادمتعرضیم مطرح جاش اینجای خیلی اجمال هم نرزیم و در ما نحنوی آیان اصولی ها مثل محومه شیخ و محومه <تصفح> مرموم حق و بعد خود و استاد این روح حکومت گرفتن لیکن خب تقریب حکومت در ظلاهر عبارت ناینی حکومت به این صورته که آیه مغارک مفهوم داره اگه مفهوم داشته باشه معناش اینه که خبر عرض جهالت نیست جهر نیست عمله به خبر عرض اصابه قوم به جهر نیست این تقریب متعارق حکومت مرموم آزیا اشکالی داره که اینجا حکومت درست نیست اشکال دیگرن که اینجا حکومت درست نیست بله و لذان از آزیه قدس الله نفسه اینجا رو میداره یک دقیق بکنیم حسب قوائد اگر مفهوم حجت باشه یک نوع تخصیصه یعنی به عبارت اخران این طوبیه. آیه مبارکه رو چجوری معنا بکنید؟ انتصيبوا قوم به جهالت، ای به جهل و عدم اینجوری لا القوم خبر اینجوری معنا بکنیم این اسمش لا القوم و خبر این معناش این آیه رو با چجوری معنا دو, دو جور یکی اینکه خروجش خروج حکمی باشه بگیم آیه مبارکه در صدرش بخته خ... منتون که خبر فاسره اگر مفهوم داشته باشه میشه خبر عدل اگر خبر عدل شد مفهوم آیه مبارکه این میشه که خبر عدل یک روز زول عمل بسیار بعد دیگه فرموزه یک روز زول به این لایجه و تبینه آن. نتیجه چی میشه؟ این از مسادیق اصابت القوم به جهاله نیست اگر از مسادیق اصابت القوم به جهاله نواشه یا نه از مسادیق حسابات القوم به جهاله هست لیکن حکمش نداره این چه تخصیص؟ فرق بین حکومت تخصیص این و این بحث رو من شب با هم کلال بحث دیگه اشاره کردم این مقداری مفصلتر تر اصحاب ما توی آخر بحث استسحاب آوردن توی مناسبت تعارض ها با اصول دیگه و با امارات یه مقداری هم ادهی از اصحاب ما توی بحث تعارض آوردن. باستان توی بحث تعارض یکی از مبارسی که مطرح کردن این همین انهای عربعی معروف تخصیص و تخصص و حکومت و گروب این چهار اسم رو در اونجا متعرض شده. توی بی این مناسبت توی زین بحث ها فوائد خوبی راجع به این جهت راجع به کیفیت هرندون داره. مثلا شما داریم که اگر در نماز شک کردین در رکوع و, و در حال سجود هستین به این شکتون اتنا نمید این نمش شک و فیشه این لنده جزو فشک و که نیست رو. از اون طرف هم شما تو دستان استثار شک عرض شده ولی صراحت است ثواب ندار تنگوزی یعنی شما الان در رکوع شک دارید در حال فرج است شک دارید که رکوع انجام دادید یا نه همین بحث بین اونجا هم هست نسبت بین دی کنتیمپلیت ادلی است شما هی من قبلان که رکوع کار به جان اون وقتی که قیام داشتم قائم بودن چند گولار بود اوندا مثلا رکوع نبوده بعد شما استصحاب عدم رکو میکنید داره. از اونم هم فرمون این نمشت رو فیشه این لنده جز رو فیشه این لنده جز رو فشک رو که لیه بشه یعنی چه شما اگر در روح شک کردی شک نه به نماز ادامه اون رفی این بحث آمده که نسبت بین این دو دلیل چیه مثل مرموم های خوی نصرتشو تخص حکومت اونجا میگن چون دلیل دو اما گفت شک و کلیسه بشه سه این شک چیزی نیست اگر گفت شک و کلیسه بشه دیگه لا تنگوز یقینه به شک جاله نمیشه چون رو لا لاتنگوز یقین به شک این یه این شک نیست از یه جای استثال نیست یعنی آمد تصرف کرد شعره در لسان یک دلین دیگر دلیلش این بود لا تنگوز یقینه روشن با ازای تجاوز یا فراخ در این دلین تصرف کرد الوازه برداشتن تعبودت رو شکت گذشن که برداشتن میشه تعبودت شک رو برداشت رو شد. لذا این میشه حکومت از دیگر که نه این تخصیصه حکومت نیست لسان لسان حکومت نیست که ما اینطور گفته لا بازر یقینه به شک استصحاب چایی کن الا مگر این که در بعد از تجاوز باشی اینجا امزفی صلاح اینجا به این شک اتنافت پس یک قول هست این که تخصیصه یعنی قول زعیب داری یعنی قائل کم ترداری یک قول مشروطتر یه بین حصولی از زمان و بعد که این به اصطلاح حکومت نه مئیار حکومت اینه اگر شاره تصرفی بکنه در اون تصرفی که کرد اگر به مجرد تصرف شاره خالج بشه این به اصطلاح هم به غروب میگن اگر نه بعد از اینکه که شانه تصرف کرد تنظیر انجام داد او برشه بکومن این اصطلاحشون این طوریه. نه اینکه به مجرد تصرف خواهد این شرط این مطلب رو این در محل خودش عرض میکنه. اما اگر تصرفی نکرد فقط اخراجی حکوم کرد میشه تخصیص حتی که یک هست که روحا تخصیص با حکومن فرقی نداز دیگران نمی این تخصیلیم بستش نه برای شما به که به لحاظ قانونی فرم بکنه مثلا همین نسیعی که شما شنیدین در جاهلی یکی قبل از اسلام این دو تصور راجع به نسیعی هست یکی این که تصرفشون تصرف حکمی بوده یکی که تصرف جاهلی تصرف موضوعی بوده مراد از تصرف حکمی یعنی به این معنا که مثلا چون محاسن جاهلی همیشه عیام هشت توی بهاد باشه لذا کار روایت که محرم همیشه تو باهاش، البته بچه زیهجه هم همیشه تو با باشه خب این با ماه های قمری چون به نجاهیت ماه های قمری متارف. لذا هست سال یک بار حج رو الیرا انداختن. این نسی هم معنی وقتی این دو جور از شواهد تاریخی در میاد. یک جورش این بود که مثلا امسال زیهجه انجام داد دو سال مثلا انجام سال سوم رو آسال دیگه تو محرم می این برای ببینید در هفت تصرف هم سه سال توی ایام محرم قرار دن بعد گفت تو ماه سفر بیه همجوه اینو گولن جلو در حقیقت ماه سفر می تو باها می گفت برای هشت تو ماه سفر بیه باز سه سال تو ماه سفر بود باز می گفت ماه رو در اول بیه که من از سر در محقیق پیغمبر از در وجهت فرمیدن در حقیقت هشت ماه شعبان بود که انا حجی کی جاریادات بیدار در زمان اجازه پیغمبر به مدینه تو ماه شعبان بود تا سال دهم ده حجری که پیغمبر خودشونه حجاشی بود در حج سودا اسمش شو دیگه ماه ذی الحجه تو ماه ذی بود هر ذی هجه بود و در اون طرف امن رو ارسال کردند فرمازه دیگه بر دین هم شد لکن بعضی از شواهد تا این خیلی مؤثر ها دارند فهم تاریخ مقصد این قسمان تاریخی که مربوط به قبل از اسلام و جاهلیت و را به تولد فهممبر و تولد امیر خیلی مشکلات تاریخی داره یک مهزار و شکل تصورتی هست که نه تصرفی که عرب میکرد این نبود بود تصرف موضوعی میکرد این حکومت به اسلام ما یعنی سه سال که میدشت بعد می گفت ماه زیه هجه توی ماه محرم گفت زیه ما این ماهه ماه رو عوض میکرد سه سال مثلا دیرهجه تو محرم بود بعد سه سال دیرهجه تو سفر بود اعلام میکرد اون بزرگ قرش که مثلا الان ماه عوض کرده این ماه آینده ماه زیهجه هست تصرف موضوعی میکرد. این تصرف و حکم موضوعی هست و آثاری هم داره همین زمان خود ماه ممکنه مثلا در اول بهار بگم مثلا مداره ساعت هفت شروع میشه ساعت درس کاری شروع میشن ممکنه میکنه. ساعت دیه ساعت جروع میکنه. یعنی در شورای بکنن ساعت 10 ساعت بهن جلو کلا هنگ کردن یعنی درسم ساعت 8 ساعت هشت هفت نگردی این اصطلاح این خود بشر به این نتیجه رسیده که در بعضی ها چرا تصرفو گفت می‌کنه این بود دارنده بگی مشکل درصیلی میبنه میاد یک جور تصرف موضوعی میکنه یک ساعت اولو جلو دیگه هر ده برنامه نه بوده میشه ساعت 9:00 جریذ در بوده یه یکی نداره دیگه یکی یک تخصیص بزنه یک تصابق عمومی میتونه لذا این دو با garantia به شکل روح قانونی این دو تا با هم فرق میکنن یا یکی هستند منم حالا وارد بحث میشم فقط به تنگیر ذهن اشاره ای میکنن آیا واقعا دو تا روح, روح قانونی دارند تخصیص حکومت یا روح قانونیشون یکی هم. الان بنایه علمانی که رو به قانونشون دوتا است یکی نیست ولی مثلا در اینجا مرمون آزیا میگه طبق شواهد ما این آیه مبارکه اگر مفروم داشته باشه تخصیصه مثل مرمون آینه و آیه خویی گرفتن حکومته این چه؟ آیه؟ بس فرقشون در اینه من آزیا میگه اگر تخصیص باشه مشکل پیگران میکنه. اون مشکلش اینه که لسان این حکم است که تخصیص بر نمی داره دقیق چون خب شما می دید تخصیص بر نمی داره مثلا اگه گفت ظلم تخصیص بر نمی داره ممکنه بگیه یک جای ظلم نیست اما اگر ظلم بود این حکم اقلی تخصیص بر نمی داره ظلم هست و نیست و بناشون اینه که اگر یک حکم شرعی داشتیم که لسانش لسانه یعنی اشاره به حکم عقل باشه اونم تخصیص بر نمیداره فهم نمیداره هم احکام عقلی تخصیص بر نمیذارن هم احکام شرعی و تعبدی که تعدیرشون تعدیر به حکم عقله اونم تخصیص بر نمیداره مثل التوسیب و من به جهاله شما با غذایه با جهل و عدم علم برکرد نکنه اون یه در زندگی بشه برکرد جاهلانه و برکرد با ادم آگاهی برکرد نا آگاهانه کار غلطیه اگر غلط بود این ارتکازه این امر ارتکازی این امر عقلی عقل عملی این قابل تخصیص نیست و لذا چون قابل تخصیص نیست و لسان آیه هم تخصیصه پس این اعواده نمیشه خود قدقه پس مقهوم عجب نیست چون اگه بنابرای شما تخصیص بدین تخصیص هم در اینجا این مثل با بین الوالد ول ولد نیست اون میشه تخصیص داد بگه ربا حرام الا بین الوالد ول ولد ربا حرام الا بین المسلم و از زمین این میشه تخصیص داد مشکل نداره قابل تخصیصه اما اگر آمد گفت شما مثلا بحکت بیخود خود رو بی جهت بزن انتبه لعبی که این بی خود رو زل بکن این تخصیص انطبه مالوک لعبی اصفات اثبات نمیکنه که تو می بچه زور من بکنی چون اون حکم عقلی تخصیص بر نمی داره ظلم قبیه خب فهم نمی پس پس انطبه مالوک لعبی باید جوری باشه در مال بچه در تصرفات بچه ظلم نباشه اگه ظلم باشه تو اون قبیه احکام عقلی به اصطلاح خودشون تخصیص بر نمی داره احکام شرعی هم که لسانش لسان، به اصطلاح استکاذات و اوهلایی و احلیش اونم تخصیص برنامه نمی داره حسابات القوم به جهاله خوب نیست بر برنامهش خوب نیست حالا خبر اعظم وجا برابر است بنابراین در اینجا اگر حکومت گرفتیم مشکل حل چون میاد میگه این جهالت نیست من رو وازیا میگه لسان ایوباره که این نیست که میگه جهالت نیست لسان ایوباره میگه این جهالت اشکال نداره میگه اینطوری که شما متن قائلی این جهالت اشکال نداره اشکالش اینه که این آیه مبارده که این تعلیل قابل تخصیص نیست چون قابل تخصیص نیست پس محروم ثابت نیست مشکل از محروم درست شد همون اشکال سید مرتزا اشکال سید مرتزا همینه که محروم ثابت نیست کسانی که در طول تاریخ فکر اسلامی این اشکال رو کردن موقع بگن محروم ثابت نیست اگر محروم وز یا محکوم شرطی نفس ثابت باشه اینجا به خاطر این زی باز هم محکوم هجده است. روشن تقریب اشکال این تقریب خلاصه اشکال پس بنابراین بر این بنظر این اصلاح یا تخصیص از یا حکومت برای آشنا یا اشنای آقایی نظر اولت مردم خودش را می‌خونیم. ایشون ابتدا مدت تفسیر می‌کنند تا بقایی کرده هم در مراجعه کنم ایشون میگن محکومت حکومت این است که دلیل حکم نازل به محکوم باشه. و شارحش باشه یا توسعه یا تضیق البته این حکومتی کهشون داره اینجا میفرماین فعلا در احسان حکومت واقعی حکومت قاجاری باید غیر از اینه مثلا توسعه مثلا و خمرو احساس قرار اون ناس تضیق مثل لا را الوالد و الوالده فیکون الحاکم دائما نازعا ال ال اسد ثابت فی الدلیل المحکوم نازع به اثرشه یا اثبات میکنه یا نه مثال خاطیشون مثال تصرف در ماهای حرام یعنی مخاطب بگیم که حکومت اینطور نبوده که یک چیز تازه‌ای باشه می اومد در جاهلیت تصرف میکردن تو ماهای حرام نحوه تصرف هم اینطور بود از کردیم این مطلب اگر ما بخوایم بین ماهای قمری با برجهای شمسی با سال شمسی توافق ایجاد میکنیم همیشه مشکل داریم یازده روز فرق داره چون سال چندسی با حرکت خورشیده ماه قدری اعتبارش به فاصله زمانی بین دروغیت اصطلاحاً ماه اینه وقتی شما به کتاب بگید اولین باری که ماه رو میبینی بعد از اینکه یکی دو شب تاریخ بود ماه رو میبینی این اسمش هلاله تا فاصله بعدی که باز ماه رو به اون شکل دیدیم یعنی یک ماه ماه قمری اینه. فاصله بین دروعیت رو ماه میگن اما سال شمسی نسبت زمین به خورشیده. در اون ای که زمین دائره که نیز بیضاویه در اون مداری که زمین به دور خورشید بیچرخه اگر در یک ای باشه بعد دومتره و همون نقطه برگرده سالش بشنید این اصطلاح دیگه به نظام از غالبا اول اعتدال رو به شرط سال گرفته ازده اعتدال بهاری رو ردیگی رو سال میگیرن که ماها الان همین کاری رو کنیم هم اعتدال خریفی یا پاییزی رو سال میگیرن که پس در زبان عربی هم بوده چون اعتدال هست پس ما یک سال شمسی داریم یک ماه قبری داریم و من چند بار توضیح دادم اصطلاحشون اینه که سال حقیقی همون سال شمسیه ماه حقیقی هم, هم ماه غنره ما حقیقتشونه اینی که الان ما ماه اردی بهش. اردی بهش ماه این درستیست این اصطلاح مجازیه سال چرا؟ سال سه رو به روزه اختلافاتی که داره اما وقتی این سال رو شما مید به دوازده ماه ماه نمیشون تقسیم کنید در ماه هم نمیشون تقسیم ماه هم نمیشون تقسیم 15 ماه نیسته ماه در واقع باید نسبتش با ماه باشه. لزوما ماه واقعی هم ماه قمریه. همون شمارش قمریه با ماه. ماه واقعی اون. این که میگن برج بهش ماه این از ادبی و اصالت ارزش علمی غلطه، واقیح نیست غلط رایجی است بین توی برج باید گفت نه توی ماه، توی ماه نیست. ماه من اردی ماه مناره. برج بهش ماه مناره. با هر حال وقت عرض کردیم در سیره بشر الان چون بیشتری معظم مناطقی که بشر زندگی میکنه کشاورزی وجود داره کسانی که با کشاورزی میکنن ارتباطشون با حرکت خورشیده چون ماه در کشاورزی تأثیر نداره درک کردیم اینه که محاسبه سال اگه دقت سال شمسیه این اینه چون بشر با کشاورزی زندگی میکنه کشاورزی هم با خورشید رابطه داره کسانی که با ماه رابطه دارن غالبا کسانی هستند که با کشاورزی و زمین رابطه مثل عرب جادیدی این تو بیاوم بود ییم بر اون و سوار شد بود جای هم آب پیدا در تییاده میشه تا اون آب تمام شد باید ن جایدی. ارتبای باز زمینین رو که و این رسنکان نداشه. لظ هم بزرگ ارزش ها مثلا عرض پیش او مثلا شطور بود اینکه درره باید در عبات داسته صندوق دا تکول مالکن بینن انوا و, کن. و ما رو گفت در اعرف فصه به, به صلاحح اذا وسط مالین ادری چون انسان که هیچ ارتباط با ظریف نداره اون شطور مالیه مالیاتش اون شطور سر کلايي بوده مگر این بشری که در بیا بوده رابطش با ماه ماه رو میدینه رو اول ماه یه بار دیگه میواخر با ماه ماجشو شد کردیم چی شد این خوب خای نهای در زندگی بشر زیاد نبود کم و توضیحش عرض کردم جاهلیون ارتباطشون با ماه بود اگه مثلا مسیق مثل ایران در همون زمان یا روم در همون زمان مسیای توکیو معتزدی اینا هرشون ارتباطشون با خورشید بود سالهای خورشیدی رو حساب می‌کرد و اکثر این سال‌های قمریه که 12 ماهه هم مجازیه ماه ماه دیگه چون که 10 ماهه سال اون 20 تا 1 سالن اصطلاح علم نجوم میگن اون هم مجازیاله یه چنکی داره جایی وقتی در مواسم مقاصد مطرح شده دیگه فعلا موضوع مطرح نیست اما این دو تا رو بخویم با هم جمع بکنیم اینه که مشکل داریم جمع این دو تا با هم کنیم یهودی یهودی‌ها می ارجاب میدن یهودی‌ها سال رو شمسی میگیرن ماه رو قمری زاهر توکیف که من میذارم در بین بشر هم متصدی به نشینم که دیگر چی کار رو سال رو به اصطلاح شمسی میگیرن احتمالاً نسیعه مشگیر مکه از یهودی گرفته باشه چون یهودی مکه در مدینه بودن احتمال میدم از اونا گیرسه اما اونا باز روی ماه قمریشون موندن از مکه رو ما و محق... لذا یک نوع تسرب موضوعی به قله آخویی اینو حکومت انجام داد. مثلا یهود هر سه سال رو یک سال رو چیز برنامه دار سیزده ماه رو. خب یه راهی که ماه قمری سال شمسی خب اون قطعا برنامه نمیخوره خیلی واضحه. اما نه در این سه سال هر شب چند بار حساب در 12 سال الان یهود اینجوریه. در 10 سال 7 سالشون 13 ماه هست یعنی 13 ماه قمری اگر سه سال بود باید در دوستیه می شود 3 سال هسته می شود نه چون دقیقا اینطور نیست 11 روز تفاوتش دقیقا 10 روز نیست که 3 ماه 3 سال 1 سال هر 19 سال 7 سالش 13 ماه هست بقیهش اون 12 سال دیگه 12 ماه هست یه بودی ها ظاهرن از جاهله این کار نکرده که جا جا بکنه لذا اینا سال چیشون همون دوازده ماه موند به قلقه چی شد مشکل پیش سال همون دوازده ماه موند نتیجهش چی شد؟ جنون تصرف شد استلاحا ما اسمی رو بیده موضوعی مثلا سه سال که بعد بعدی تو ماه سفر رجب محرم بوده این ماه زیجه سه سال که بوده گفت دو سالی که سال سوم بگوزن جرام بازن سفر زیر جرس و حالا مجرام این نقطه بحثی که بر ارز کردم، یک چیزی نیست که بقید در روایت باشه بعد مروم آزیا میگه حکومت بر نحنفی صدق نمیکنه کنه از المستفاد مفهوم اوله ایشون میگه چون مفهوم در اینجا تبیانه بدقه بکنیم منطوب تبیانه اینجا از اون خواسته همون به این تا وقت محکومش چی میشه؟ لات تباییم اینجا اکن غیر الفاسد لات تباییم وقت معناش عدم موجود تباییم یعنی اینجا شاره نیامده به برهوه و جیت برده روهو کن و عدم تباییم از این کشف میشه انشاره قده اعتبره و علمه چون گفت تباییم نکن پس کشف نیکن. فلا معنا للحکومه معنى حکومت از به معنا خروج خبر العادل از تعلیم موضوعا این معنا نیست چرا چون شما نقصه رو بردین عدم وجوب تبیان از المفروض عدم وجوب تبیان عن خبر العادل و المستفادن المفهوم اولا این فهم بیده میشه سمه یستک از عدم تبیان حالا مثلا اصف شده این یستشتر بقولون شده یا به ملازمه یک حکم وضعی ازش در میاد اول عدم وجود تبیین بعد حکم وضعی در میاد که انشار نشاره قدرتبره و علم فکیفه امکنون الانتظام به انهو خارج و نموم تعلیم موضوع فلایش و تبیین و این شیعته قرد این من حکومه نماهی فی موعداکان لسان و دیل حاکم نفی الموضوع و کان الغرزومه نفی حکم کمافی قولی این هستن لاربا بین الوالد و البرد و اما لوکان لسان و دلیل نفیل حکم اول الامر خوب دقت بکنید اینجا از اول همه دون لاربا اما اگر گفت لا یهرم و رب الوالد لا یهرم و زیادت و الوالد از این یه تخصیصه این یه حکومت نیست یعنی ایشون میفرماید شما خوب دقت بکنید شما حکمی دید که داشتید در منطوع حجوب تبیم در محکوم عدم وجوب تبعیان این عدم وجوب تبعیان حکمه این موضوع نیسته منطوق آیه این هست که واجب نیست تبعیان و اگر این معنی را در نظر گرفتیم این نسبت این لایجم و با تعلیم نسبت تحسیصه چون که انتصیب و قومن به جهالته این بازیه انتصیب و قومن به جهالته ممنوع الا در جایی که لایجورت تبایی اینجوری باز بگیم اگه گفتیم الا در جایی که لایجورت میشه تخصیص و اما لوکان لسان و دلی نفیر حکم اول لحن یعنی به عبارت دیگر شما در اینجا محکوم رو از باب حکم تکلیفی اول در آوردی اگر حکم تکلیفی شد این نسبتش با تعلیم تخصیص میشه نه نسبتش حکومت بشه این خلاصه بخشی شد فلیسه هنه ها که کومتون بل تخصیصون خلاصه چیده که اینجا ها تخصیص بشه چون اگر این جور بود میفرمود اینجا ها کن فاسبون به نبه این فلیسه با حجه خب خب یعنی اینجا ها کن آدمان حجه اینجور شد اگه با حجه سون یعنی علمان تو مرحومه آزیان قاله که حجه ها دارمدار کاشقیه ده اما اینطور بود لسان لسان حکم بود تبین بود و ما اگر و از باشین آیون باشیم باشه از کردیم آیان و اصولی چی سنی و چی شیعه که اینجا تعبده یعنی تعبد آمده به تباییون اصلا یکی از نقاط بحث که مرموم استاد و دیگران هم به این اشاره نکردن مرموم اشاره کرد نقطه خاصی بود آیان این رو مفروغانه گرفتن که تباییون حکم تعبدی شرعی است دلیلش هم عرض کردیم درش اینکه که عنوان فسخ به کار برده شده فسخ اصطلاح شرعی است فاصل اصطلاح شرعی چون اصطلاح شرعی پس تبیین هم وجوب شرعی تعبدی داره ولذا یک اشکالی که ما به کل این چون عرض در تاریخ در قرن اصول هم اشکالی فسخ نشده اشکالی که ما کردیم شبهه ما این بود که این تبیین را اوغلایی قسم تعبد شرعی نیست. حالا اون هیچ اون اشکال ما بود. الان هم اشکال آغازی ها رو همون زمینه عمومی است یعنی مرموم آغازی ها میگه شما تعبد رو به اسطلاح تبایین رو وجوب تعبدی گرفتین. اگر وجوب تعبدی گرفتیم مفهومش این است که در خبر عادل این وجوب تعبدی نیست خوب دقت بکنیم مفهومش این است که خبر عادل جهل نیست این دوتا دو باید فرمان این خلاصه اشکال آغازی مفاده منقول مفهوم این است که در خبر عادل تبیین واجب نیست لا و تعبد تبیین این لایج و تعبد تبیین نیست از تصیبح و غووان به جهالت چیه این لا یتجوب تبیین مفهومش این نیست که جل نیست مفهومش این است اگر ثابت بشه در این مورد اشغال نداره تصیبح و من به جهاله الا در خبر عادل اشکال نداره میشه تخریس این روشن شد اگر روشن شد ایشتر بگید توش روشن بیش. ولی کمال و آلوقان لسان دهی لحاق کرد. مثلاً گفتم لا یحقم را با من البالد ولی نه نمخصص ولاده لسه حرم مثل ل. لا نو عالی که من علی. ول مقام من از قبل قبیل دینه. از المستفادون عالم حکم اولا ادم و وجود کاریون. یک کلمه ای هم بودن و بکوت نداشتم زیرا باید آیه کویل چون وجود کرد. ادم وجود وجوب تعب... تبایی دونه شرعن تبایی دونه شرعن تبایی دونه انخبر و لازمش یعنی به عبارت و خواهی همون بحثی که کراه نهر کردیم میگن احکام وضعی متولد میشن از احکام تکلیفی پس خب تکلیفی این بود لایجه با تباییم حالا که لایجه با تباییم بناش این که لازمش این که حجه و انهو اعتبر علمن اینه علمه فیقون المخهوم و علاوه بر تبییر هم کل خبر غیر علمی لا انه خاطمون خب اشکال جهان توضیحی که الان قبل از عبارات ایشون دادیم خب بگیم متخصیصه ایشواز دهیم بگیم مفهوم ثابته و تخصیص بزنید تعلیل و عموم رو جواب لسان این دلیل آبی از تخصیص این توضیح شما قبل از عبارتیشون ایشون شر یک احکام عقلی آبی از تخصیصن تخصیص بر نمیذارن دو افکان شرعی که ارشاد به و عقلند یعنی اینطور نیست که شارع بگه شما حسابات القوم به جهالت نکنید الا در اینجا حسابات القوم خیلی بعیده این تعبیر خیلی بعیده بله ممکن است بگه حسابات القوم به جهالت نیست این ممکنه این اسمش حکومت است اما تخصیص خیلی بعیده و اون که از آیه میاریم ما تفسیره این خلاصه اشکال مرحوم عواضیان روش ان ان شاء الله تعالی من یه توضیحی رو بر عرض می‌کنم که روشن بشه آیه رو همین بحث ظریفی و اشکال رشتتی است لکن یوم چون جواب یک جوابی که ایشون می‌ده خلاصه جواب رو من عرض بکنم خلاصه جواب این است که همینطور که شما فرمودین درسته حکومت همین یا توسعه است یا تذیره لیکن این یک قسم حکومته یک قسم دیگه حکومت این است که حکومت باشه نسبت به به اصطلاح احکام دیگری نه به نسان خود تعبود شرعی به اولوج و قسم ثانی به اما مو اضاکان موضوع به نفسی قابل به تعبود بلا احتیاج نرل لغاز اثر شرعی کاری بلا لغاز اثر شرعی نداری فیاسو ابد این به موضوع ولی علمیه کن لغاز اثر شرعی اصلا از مرادیشون که لب یکنون لب و اثران تعبد به لحاظه که اثر دیگری باید باشه نه اینکه اصلا بی اثر مرادیشون میگن ما در تعبد اثر میخواییم اما لازم نیست اثر من اثر شرعی باشه اثر عقلی هم باشه کافیه که ما استلاحا استرین رو گذاشتیم حکومت ظاهری همتا آیا خویید دوتا رو بایدید خیلی فنی خیلی فندیمی زالا خیلی اشکال نمیکنیم ما یک حکومت واقعی داریم یک حکومت ظاهری داریم هر جا که در لسان دلیل در یک امر ظاهری یعنی در یک تریفی در یک چیز تریفی تصرف بشه او ظاهری میگه این تعبیر من تعبیر آرکویی در اینجا ما این حکومت ما به لحاظ آثار علمه وقت آثار علم اینطور نیست که شرعی باشه شما بعضی اساس شریعت برمزن و تنبول علم فرید اثر اساسی علم در واقع حجیته تنجیز و تعذیره وقتی که آمد اینجا ها کن فاسقون به نبع علم دقت بکنی یعنی آدل لایجه و تبینه هم. اگر لایجه و تبینه یعنی منجز و معذنه ما این مفهوم رو اثرش رو به لحاظ انتوسیب و قومن به جهاله نمیگیریم به لحاظ حکم عقل در باز حجیت میگیریم محسوسا که مردم و استاد قائل هستن حجیت ذاتیه حکم عقله ما چون حکم و ها بسیار عقل ها میدونیم بنابراین و عرض کردیم این آقایان قائل هستن که به اصطلاح حجیت دا... و این خیلی نقطه اساسی است حجیت در مدار کاشفیت است حجیت است و در مدار کاشفیت کاشف که تام حجت تاممه کاشف که ناقصه حجت ناقصه این مبنای اصلی آقایانه باز روی مبنای که آقای خوییم در اینجا طبق مرمونایینه عمل پرمودن اه... معنای حجیت در جایی که کاشف ناقصه تتمیم و کشته. وقتی ایشون میگه این یک نوع دیگری از خود پس در حقیقت اینطوری میشه اگر آدل خبر آورد تبیان واجب نیست خوب دقیق کنیم وقتی گفتن تبیان واجب نیست یعنی چی؟ این یعنی خودش بیانه یعنی خودش این خودش علم دقیق کنیم اون این اثرش لازم نیست ناظر باشه انتو تو و قومن به چه حاله از هرش این میشه که اینجا حجته تنجیز شد تعذیر شد علم پیدا شد از که به مرحوم نایینی الله نفسه که معنی حجیت و تصفیم کشم میدونم نینجوره تمثل میکنم به این حدیث لا عذر یا لایم بقیل عهد به موالینا از تشکیک و فیمایر به امنازقاتونا وقت بذار که دو سده رو من تا برسی که فهم کنه لیطلاق هم از تشکیک یعنی شاره شک برداشت. شکلی که برداشت تکیم کشبه که هست حجیت رو در اعتبار قانونی حب دقیقه تشکیم کشبه وقت من از کردم چون ایشون حجیت تشکیم کشبه تو مقام اثبات هم دلیلی که برای حجیت میاد بود مفادش هم باشی حب دقیقه دکتر پنی در مقام تصور در مقام قانون حجیت رو تشکیم کشبه دن در جایی که کاشف ناقصه مثل واحد. و تو مقام استظهار و لثار دلیل هم باید همینجوری باشه. نکته فنی در بحث اینه یعنی تو مقام استظهار هم باعث زیاد شارژ کار بکنه بگه من این کاش به طور کردم. وقتی میگه لیسل اهل الموالین از تشقیق به شک برداشته. شکی که برداشته میشه کاش تا. چون کاش ناقص بود 80 درصد بود. 20 شک بود. میاد میگه من شک برداشتم. می‌بینی؟ نقطه روشن شد. یک تصویر معنای حجیت تو اعتبارات فانونی دو دلالت دلیل در مقام استظهار یعنی دلیل هم تو مقام استظهار باید لسانش لسان تشیم کشت باشه و در ما نحن فکر میگه؟ اینجا اتون فاسقون به نبعه فتبینون یعنی دنبال بیان دارین وضوع معناش اینه که اگر آزل گفت نه رای اتا جدا وقتی گفت لایحه را جعل تبیین یعنی خودش بیانه، یعنی کاشف بود یعنی کاشف تام بود پس در مقام استظهار هم از علی مبارکه حجیت در میاد اون وقتی گفت کاشف تامه خود به خود از توصیف و قوام به جهاله خارج میشه دیگه جهل نیست خود به خود پس آمد تعبد رو به لحاظ حکم عقلی گرفت بعد از اینکه تعبّد به لحاظ و حکم عقلی شد، لسان دلیل خود به خود خارج شد. این هم یک نوع حکومت، پروسس اصلی خود به خود. این حکومت نه این که مفهوم ناظر است به خود علت، ناظر به این نیست. مفهوم مفهوم ناظر است یک ارتقاض و عقلایی. اون ارتقاض و عقلایی این است که کاشف ناقص بود تام بشه. ایشون تفسیرشون اینه. وقتی آمد گفت خبر فاسقی او تبیین مفهومش این شد که خبر عادل لا تبیین یعنی شیعنی بیان خودش یعنی کاشفه خبر را عادل لا تبیین این کاشفه تا وقت این تصرف اینجا شد تصرف با این تصرف این چاره در اینجا خود به خود انتوسی و من به خارج شد نه اینکه نازل باشه مرقوم عاجیا بخاست بگه ناظر به نمیشه. آل که ناظر به اون نیست. وقتی ناظر به اون نشه خود به خود خارج میشه. اینو می نبره حکومت. حالا چون سردو باز توضیح بیشتر ارزمونام به سایه مقدار ببینید اگر بخویم ایشون نه ایشون نه مرحوم آینی ناینی به طور فنی مطلب رو نلباشتن من به طور فنی عرض بکنم ببینید ما اینجا دو تا چیز داریم. یکی تبینون یکی انتصیب و قومن به جهاله احتمالاتی که هست یکیش احتمال ماست که دیگه به نظر ما معنی خیلی واضحه ما تبین رو گرفتیم یکی را اقلائی توصیب و قومن به جهال هم گرفتیم امروه اقلائی هر داشت اقلائی ایچ مشکل نداره. آقایی هم که اصلا مرای از آیان تونجه ای که از اول اصولی نایوم نهاده تباییون رو گرفتن وجوب شرعی تعبدی بگرد کردیم این نور کلام در اینجا اگر تباییون وجوب تعبدی داره انتو و قومن به جهالتی رم تعبدیست یا نه این علت چون علت این تو که عموم داره یعنی لا ی جوز و اصابت و قوم به جهاله اینم هم تعبده یا این هم آزیا بخواهد بگه شما هر دور تعبدید و گیری نستازشون تخصیصه حقا با آزیاست <تصفيق> نه داشته نه آقا کویی داشته نه آزیا من خلاسه رو بگم که خیلی لفیفتر هست هر قایی دا شما اگر هر دور دو تا حکم داشته باشین یکی با تباییونتی خبر الفاسد یک حکم لا یدود اصابت القرب جهاره این دو تا دو تا حکم شدتر اگر هر دور تعبدی گرفتین هر بازی هست نسبت این دو تا در محروم با این یکی منطوقه و محرومت نسبتشون تخصیص منطوقت محرومت که همونه محرومت که تعییلش نه این تخصیصه منطوقت محرومت که خوبشه چی مخان بگن؟ مخان بگن اولی تعبد دومی اقلالایی یعنی این تعبد نرسته روی اصابت رو مفهوم نرسته روی اصابت رو قوم به جهاله با این طب چاره یک امر و اغلایی رو امضا کرده بعد از امضای اون امر و اغلایی این درمونی خود به خود تحیلیف پیدا میکنه. یعنی اگر شما نسبت و مستقیم بین این دوتا گرفتیم یک لایج با خبر و انخبر رو عاده لایج با لا تبیان انخبر خبر عاده لا رو حساب اونقومم بشین حالا دوستثال بگیریم تعبدی بودیم. آ میگه نسبت این دولار تخصیصه راست میگه هم با شما حساب رو هم با شد. آ خوبی می این دولار نسبت نگیریم. اینجوری بگیین. لایجب با خبریم فی خبر العادل هواها خود کون بیان ها. یک حکم اوقلایی و عقلی از این در میادی تو اوقلایی اقللی میداد. یک حکم عقلی از این در میاد، اون حکم عقلی که آمد دیگه لایجوز و حسابات القمبه جاله خود به خود برداشته میشه دیگه وجود نداره ما نمیایم نشاست بین این دو تا لاجوز و تبیین خبر عادل لاجوز حسابات القمبه جاله این دو تا بررسی نمی کنیم نکته خیلی روشن شد خاص بنابر این در تصور آیات دو تا حکم تعبدی یک لا یک این برعکس من وقتی که ازش طور نرم بعد اضافه کنیم در حاشیه تو خیلی لطیفه اینمนะครับ لا یک بود تبیین الخبر العظیم این یک دو لا یک وصوله القبل جهاله نسبت بین دو چیه تو اما دیوکه نسبت بین اینها مثل لاره با بینن والد و نیست مثل لایه و مربا نسبت تخصیص رو است میگه هر واجیاس آقای خوی بلی که از مشکل قرار بکنن یا نه؟ ما این تا رو با هم نگاه نمی کنیم. وقتی گفت لایجه و تباییون این لایجه و تباییون ناظر است به حکم اغلعه در باب تنجیب بخواه کنیم این لایجه و تباییون یا به اصطلاح حکومت زادری چون تباییون مال مقام تعذیر و تنجیبه مثل ربانی ربا خودش یک ای خیریته، ربا در خارج حرام بین والد و غیر حرام. تبیین تط... خودش یک نکته اوغلایی داره. نکته اوغلایی تبیین چیه؟ تنزیه و تعزیره. بیان بودن، علم بودن، منجز بودن معد... و از پس اگر گفت لایق بود تبیین، یعنی بیان اگر شد بیان اگر شد علم تکیم کردی کد و اصابت القوم به جهاله خود به خود برداشته میشه این ناظره به اون میشه مرسل که حرف آقای خویی پس آقای خویی یکی را تعبد گرفتن یه حکم عقلی در مصد امردن با آوردن این حکم عقلی میگن این طبیعت این حکم ناظره به اون حکم دوم نیست و اصابت القوم به جهاله وقتی آمد رو کرد. تباییر میخوره به حکم عقل تسیم و تشته. وقتی خود به حکم عقل حکم عقلی که در اینجا آمد این حجت و نما از و منجزون و تا و تا خود به خود لایجوز و اصابت و قوم به جهانه برداشته میشه خود به خود برداشته میشه نه به نظر تعبد اولین خودش بعد. اسم اینا هم اشون گفتن حکومت این هم حکومته عرض کردن برایشون بینه من تاکید نکردم معلوم ناینی تاکید رو داره ما از رسول ما بهش نشون दिली اسمش حکومت ظاهری حکومت ظاهری مرالشون نه جاهایی که بیا ذعل تصرف بکنه روی معذر و منجز تصرف بکنه این اسمش رو حکومت ظاهری جاهایی که باز رو اون موضوعات واقعی تصرف بکنه و حکومت واقعی اینطور اشتباه نکن باید میگه خوش که آخو ایشون تعبیر گاهی مثلا میگه اکتمل آلم بعد یه انسانی که زاهد و آبد و این اینم آلمه میگه این رو موضوع تصرف کرد این یه نوع حکومت یه نوع حکومت اینه رو کاشف ناقص تصرف می کنه ایشون میگه اگه رو کاشف ناقص تصرف کرد حکم عقلی میاد در اینجا بعد از آمدن حکم عقلی هر موضوع دلیگه که توش جرح هست یا جرح یا شرح خود به خود برمیسته میشه نه به خود. بخود. این بردشون یک ای نهر حکومت گرفتن پس بنابرای و روشن شد نظر اساسی بنده اخلاق ما با ناهایی که ما هر دور اغلایی گرفتیم هم یجب و لای... لا... یجب و تبییون خبر یجب اگر سال مفهوم نداشت اگر هم داشته باشی لا, لا یجبش ارشاد به حکم اغله اغلاف مذرد یه حکم که انسانی که فاسقه چون نکته اساسی ما این بود که به نظر ما فاسق اصطلاح شرعی نیست یه اصطلاح ارپیست اصولا ما یکی از اخلاق با خیلی از این مصطلحاتی که الان ما گرفتیم شرعی به نظر ما شرعی نیستن اقلایی هستند. در هستن در جامعه وجود داشته در فصل تعبدی و توسلی تعبدی به نظر ما در زندگی بشر همیشه وجود داشته این نیست که شارع آمده تعبدی و تخصصی درست کرده اصلش مولدش یاره نیست اصولاً در زندگی بشر به مقابل بوس یک گوسه سر می‌بوردم مجبور نمی‌کردم میرفت این اسمش تعبدی تعبدی چیزی خاصی نداره مولاکدی نه شاهدمی نداره تعبدی هر کاری که انسان انجام بده برای یک قایت و برای یک هدفی که علای از ذات خارج از ذات خودش روی اهداف اقراض نفسانی خودش انجام نده یعنی به خاطر خودش و در محمزی خودش نباشه او س سر میبره ترس اون جایی پلی هست مردم از خلی استفاده پول استفاده میکنن به سر اضاف اونجا که اگه اگر پل خراش رو تعمیرکنه. اینا این شژ تعبودی هر کاری به انسان به خاطر یک مب اعلا انجام بزنه. حالا مب علش بوت بوده م علاشاییمثلمثل آش بوده م علاش مثلن کاهنگ بوده مبد علاش فر و نظ پیغمبر روا ما ماتحانم نظر للا فسیده چون انسان برای قیل خدا زیاد نظر میکن یک نظر خاصی رو چاره قرار داد. این یک نوع حکومت یک نوع حکومت تو عدله اثباته تو کاشفه من رو آسید این رو تصور میکنم پس در اینجا این اشکال آزیات میشه حل کرد و خلاصش اینه که با تعبد لایج و تبیل این میشه کاشف تام کاشف تام که شد میشه حجت بعد از این که کاشف تام شد خوب دقت مکنیم انتوسیلا یا جوزه اصابات القوم به جهان دیگه موضوع نداره لیکن کاشف تام شدنش تعبود داشت چون تعبود داشت میشه حکومت بعد شبیه بوده این اشکال بهشان وارده که این شبیه بروده. حالا من بعد فرده انشاءالا توزیادش ارزم به نظر ما راه دیگه هم نیست که ما گفتیم هر دوش اغلاییم و افتیش بین حرفا ندارم و سلالله سیدنا